اللهم صل على فاطنة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم صل على محمد وأول محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباحثمون در بحث سیاهدانه بود حالا فرمایشاتی که ابو سینا در کتاب قانون گفته و یا تلخیص او رو چقمینی در کتاب قانون چه آورده یا بخشی از اون رو که دکتر محمد دریایی تو کتاب سیاهدانه اوورده و صفحه چهارده ابن سینا به طور فهرستوار منافع سیاهدانه را چنین ذک می کند. یک ورم ها و جوشها دوم جوشها و زخم های چرکین سوم سردردهای میگرنی همچنین سرگیجه، چهارم برای چشم هایی که فراوان عشق ریزی دارند و چشم های زعیف این عشق ریزی با اینکه علت خاصه ظاهری نداره چه علت مثبت مثل گریه از خوف خدا مثل خشیت مثل انابه مثل ندبه یا گریه بر مظلومیت چارده معصوم اینا همه گریه های علتش هم بسیار خوبه یه با دیگه نه علتش نه حساسیت فصلیه آلرژی داره رینیت آلرژیک داره اونو باید درمان کنه و ضد حساسیت مصرف کنه چه آنتی هستامین های شیمیایی چه آنتی هستامین های طبیعی بهترین داروی آنتی هستامین طبیعی چیه اگر کسی عشقریزی بیمورد داره خوردن سیب درختی بعد هر قضا یک اگر یوبوسد داره یا نفخه یه استکان آب سیب تازه بخوره یه بار کسی مثلا فرض کنین سلول های کره چشمش یا قسمت شبکی حالا مخصوصاً قسمت ملتحمه رو به تحلیل می روید یا التهاب دارد در بحث التهابش مثل چی؟ جوشانده برگ بارهنگ حرف اول میزنه. سیقی چشم، سی تباخم چشم. اگر پرده ملتهبه ورم دارد، اینجا جوشانده اوکالیپتوس حرف اول رو میزنه یا بخور اوکالیپتوس. اگر سلول های چشمی رو به مردگی میره و طول عمرشون کوتاه و رو به تحلیل میره، بهترینش جوشانده برگ موه برگ درخت انگوره پلک چشم بیدی پایین تو ساک چشم یکی دو قطره میچه کنیم حالا مبایست خودم اگر عشق ریزی فراوان دارد به نوع حساسیت فصلی و مانند او که التحاب پرده ملتحمه هست اینجا سیاه‌دانه با اصل میتونه شب قبل خواب بخوره میتواند جوشانده یا دمکرده شده به عنوان چای سیاه دانه در بین روز بخوره میتونه به چکونه یک قطره در ساک چشم از جوشانده یا دم سیاه دونه پس چهارم برای چشمهایی که فراوان عشق بیمورد دارن پس یه بیموردی باید اضافه کنی برای چشم که فراوان عشق دارم و چشم که ضعیفه سیاه‌دانه مفید، مفیده توضیح دادم پنجم برای دستگاه تنفسی مفیده اگر تازش بخوره ها با اثر در درمان آسم مفیده در پیشگیری و درمان برونشیت حاط و مزمن مفیده اما اگر سیاه دونه مونده باشد در مجاورت هوا یا نور خورشید یا نور شرید پروجکتور مانند او باشه اون خودش عاملیه برای ایجاد برانشید چون گاز خردل تولید میکن. همچنین سیاه دونه تازه که پود کرده یا خودش با اصل بجوی در درمان شبه آسم ها شبه تنگی نفس هم مفیده این حرف آقای ابن سینا شبه آس اینجا جوابش به اصطلاح امروزی به اصطلاح امروزی گاهی شبه آس مربوط میشه به توقف تنفسی در دم، در بازدم، هنگام خواب یا هنگام بیداری یعنی بیماری آپنیک که تو اصوله تو به داخلی هاریسون اپنه هنگام خواب رو تو چه بیان میکنه تو کتابهای پزشکی مرجع جدیدم مثل طب داخلی اسمیت این مطالب نیز بیان شده حالا مبایست کنم بالای بیماری شبیه آس بنویسیم توقف تنفسی یا بیماری آپنیک در تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه کودکان قربون امام رضای و اوف میگه البیضل مسلووق یور فر ره وال ابتار تخممرغ کسی زیاد بخوره یا مدا داشته باشه یا چرب و چیلیسی به صورت کوکویی یا رو بخوره بدون اینکه پیاز همراش بخوره که امام صادق فرمود بدون پیاز با این مبتلا میشه هم به ربه که تنف توقف تنفسیه الفلام هم جنس هر نمیگیره در خواب در بیداری در دم در بازدم هم مبتلا میشه به ابتحار یعنی ازدیاد گاز معده و قرغره های شیکمی و رودهی لذا حتما باید در خوردن تخم و مرق دقت لازم کرد حالا هفته یک بار دوبار خوردی اب نظر باید با پیاز بخوری همچنین با روغن زیتون چه بهتر؟ اونایی که میخوان اولاد دارشن و اولاد پسر میخوان مطلب پنجم چی شد؟ سیاه دونه تازه با اصل که کسی بخونه برای دستگاه تنفسی بسیار مفیده و در درمان بعضی از بیماری هم نخش داره یکی مثال زنین به بیماری آسم یا ریق نفس تنگی نفس یکم مثال زنین به بیماری برونشیت. به خیلی تازه بودن سوم مثال زنیم به بیماری اپنیک یا توقفی تنفسیم ششم برای دستگاه های گوش و حلق و بینی و دهان مفیده گفتیم اگر کسی آلرژی ریتینیک داشته باشه موامنا گفتیم اینجا میتونه از جوشونده یا دم کرده سیاه تو بینیش بچکونه چکنه یا بخور سپند از بین ببره آبریزش بینی رو یا اگر آبریزش بینی تو هم با خونریزی شدید از بینی باشه رعاف و دم اینجا جوشنده قلیز سپن سرد که شد با قطع چکن یکی دو سه یکی دو سه قطع می چکنی رعاف و دم هم خوب میشه خونریزی شدید بینی هم چی میشه معاملان؟ قطع میشه هفتون سیاه دانه با اصل که مصرف بشه در درمان انواع تب ها مفیده چون گایی تب ناشی از کمخونی شدیده گای تب ناشی از فشاخون پایینه گای تب ناشی از وجود باکتری یا ویروس و مانند اوه بحث تب ناشی از افونته غالبا تب ناشی از عفونت های داخلی توعمه با لرزم هست هذا تب على میگیرم سیاه دونه نقش مهمی داره در درمان و پیشگیری از انواع تبها چه تب های ویروسی چه تب های عفونی چه تبهای ناشی از آمفلانزا که علاوه بر تب دارای استخون درد و آبریزش بینی هم غالبا مطلب هشتم حاکسازی بدن از سمومه سموم داخلی چرا؟ چون که سیاه با اصل که میخوری خود سیاه یک سنگ شکن طبیعیه خرد کننده سنگ های کلیه نمیگذاره سنگ ها تو کلیه تو کالیس ها باقی بمونه یا تو قسمت خمش حالب که بعد از لگنچه و قبل از مثانه هست باقی بمونه و انسداد مجرا ایجاد کنه و رفلکس ادرار بشه و باعث پوسیدگی کلیه بشه این سیاه سیاه‌دونه پاکسازی میکنه بدن رو از سموم و خورد کننده سنگ های داخلی حتی نقش داره مؤمنا تو بحث های سموم ناشی از متابولیسم و سوخت داخلی نزا ابو ابوعلی سینا در کتاب قانون طب مبسوطا پیرامون سیاهدانه یا شونیز سخن گفته تحقیقات این دانشمند مسلمان شیعه ایرانی که آمیزهای از تجربیات گذشتگان و پژوهش‌های خود اوست سیاهدانه را چنین معرفی می‌کند، طبیعت و مزاج سیاهدانه گرم و خشکه خاصیتش تون دوتیز تکه کننده بلغم زداینده بادشکن و بسیار تنقیه کننده یعنی پاک کننده بدن از ازوم اثرش در آدمان ظاهری مثلا زیگل های معکوس زیگل های من منکوسه یعنی زیگیل های واجگون رو از بین میبره خال‌ها ها رو از بین میبره حتی خال‌های های گوشتی چه بخوری چه به صورت زمات روش بگذاریم در علاج بهق که تو عربی میگن تو فارسی میگن بهق تأثیر بسزایی داره همچنین در درمان برست که پیسی هست بیماری ویتیلیگو هست مفیده حالا هر دو شما از روایات و طب مکمل گفتیم. مثلا مال بهرک یا بهق گفتیم جوشانده یا خورشت برگ چغند با گوشت تازه گاو این درمان کننده بهق به عنوان پیشگیری هم خوبه. یا مثلا دم کرده خرد شده برگ های قازیاقی در برنج شتوکدار اون اولی یک روز درمیون نهار این دومی یک شب درمیون شام بخوره پس اولیه که به حق باشه به حق باشه بخواد درمان باشه اینجا با به حق های و گوشت تازه گاو چی راست میکنیم خوراش درست میکنیم میکنی. یک روز درمیون نریزی که به حق داره یا به حق داره یعنی لک های سفیده پوست داره در بشره و لایه مالپیگی این سطحی ترین لایه پوست و لایه بعدش اینا خوب میشه این فهماش امام رضا درود بر امام رضا. اگر کسی برست داره هرچه لایه پوستش درگیره درطای سفید هست امقی تا به ازاله رسیده هم بشره هم مالپیگی هم درم هم, هم این رو درگیر کرده اینجا میگیم برگ های یا برگ بو. اینه خردش میکنی تو برنج شلتوکدار دم میکن شب در میمون از این بخور این شامل این هم مؤمن علاج به که همون به حقه که تو روایاته و برست که که پیسی حالا اینجا چاپونه اشتباه کرده یکم جا به جا داره بمونه اگر کسی ورم بدن داره یا ورم دست و پا اینها داره و همچین جوش سطحی پوست داره یا جوش های زیر پوستی داره باز داروش چیه؟ سرکه داروی جوش شیری ورم بلغمی سخت رو هم علاجه جوش شیری رو هم علاجه سرکه سیاه سرکه سرکه سیاه يعني سرکه یعنی سیاه تو سرکه بخیسه یه مدت بمونه سرکه سیاه ولی با سرکه سیاه دونه هم داروی جوش های شیری رنگ هم داروی ورم های بلغمیه یعنی مکوس یا بلغمش زیاد شده به اسطلاح قدیم یا مکوس زیاد شده میاهات اضافی بافتش برای هر دو داروه چون بعضی مریض هستن به قدری بلغمشون زیاده کای روزی دو بار ساکشن میشه. ریهاشون درگیر میشه، عفونی میشه، خلط زیاد داره، آب‌آوردیه آب ریه داره. جاروشیه مامنا، خیسانده سیاه دانه در سرکه. مخصوصا سرکه سیب. اگر کسی جوشهای چرکین داره، یعنی قرحه با حجمی قاف. اگر کسی جوشهای چرکین داره اگر سرکه سیاه دونه رو بیان روی قرحه بلغمی که گرم و چرکین بگذران مفیده تو پزشکی جدید مثلا با جدید طب مکمل مثلا با صابونه گل ختمی به صورتشو بعد خوش کنه بعد محلول سرکه ماساژ بده جوشای صورت از بین محلول سرکه نبود با جوشانده آبیشن شیرازی نبود پماد آکنیل که اونم از چه اونم از آبیشن شیرازی درست شد با اون ماساژ بده این دونایی چرکی مخصوصا در جوانان و نوجوانان که جوش غرور جوانی دارن این همه خوب میشه. اما از درون باید کاهو بخوره کرفس بخوره لیمو شیرین بخوره زچ که خام یا آلو بخوراره که از درون خونش تصویه بشه و گردش خونش سریع بشه و کلیههاش فعال باقی بمونه در دفع اوره که نمک سمی خونه و کراتین که فصفات است اگر مؤمنا کسی زکام داره حالا همین سیاهدونه رو در روغن سرخ بخیسونی و به سرت بگذاری مخصوصا تو تکه پارچه کتانی پارچه نخی عرق گیره و رفع بوی عرق می کنه اما ضعیفه اما پارچه کتانی رفع بوی عرق کنه و عرق کم تر از کنه قوی تره گرفتیم چی گفتم؟ حالا سیاهدانهی که تو روغن گل سرخ خیسانده شده و بزنیم رو سر و پارچه کتانی روش ببندیم چندین فایده داره هم زکان قطع میشه بدون که داروی بخوره هم عرق سر کم میشه هم خارشش سر و دونهای چرکی که تو سر بزنه بمیره چند منظور عمل کردیم حتی کسایی که به خاطر سکته خفیف یا به خاطر مزاج بسیار سرد یا بلغمی شونشون کت شده یا زبونشون میخواد لکنت پیدا کنه این خیسانده سیاه دونه در گل ساخت در همه این موارد مفیده اگر بخوره اگر چنین سیاه دونه یا که در گل سرخ بخور سبب باز شدن گرفتگی های پالایشگاه کبده چون کبد برای بردم پونسته تا کار میکنه نباید شریان ها یا ورید هاش بگیره مخصوصا ورید تحتانی کبد نباید بگیره خیلی عوارض سو دارد حالا یکی از چیزایی که باز نگه میداره این ورید های کبدی ها چیه خیسانده سیاه دونه در روغن گل سرخه حالا روزی قاشم مربخوری از این مخلوط و یه قاشق چوب خوری در دو برده از این مخلوط میخوری به مقدار یه قاشق چوب خوری یعنی دو تا مربع مرباخوری اگر کسی دندان درد دارد آبپز سیاه دانه با سرکه آب‌پز سیاه دانه با سرکه مزمزه‌کنو درد دندانش ساکت میشه اگر با چوب سنوبر که آب شده با اون مسواک بزنه درد دندان تسکین پیدا میکنه از این قوی تر گل میخک دارویه گل میخک دارویی قرنفل اون مسکن قویه و عصبهای ریشه و لسه رو بیحس میکنه ازو سی بی حسیات دندان کشی ها تعمیرات لسه تعمیرات ریشه دندان معالجه ریشه ای بسیار مفید یا دلت ریشیش میش میگه جرم دندان بگیری اینها اونجا میتونی اول یک شش هفت از این گلها این عین میخه کوچولوونه قهوه‌ای رنگ شش هفت تا رو بجوی کل دندونا لسا فکت بیحس میشه حالا تعمیرات اساسیش بی حالت گرفته نمیشه چیزای این دیگه هم هست بیحس کننده است. اما سبب پوسیدگی آج و ریشه دندان میشه ولی بعضی عطاری ها میدن اشتباه میکنن مثل جوشانده پوست درخت چنار بیحس کننده هست که بعضی ها میدن. اما سبب پوسیدگی آج دندان و ریشه دندان میشه این کاره نکنه گرفتین مؤمنات چی گفتن؟ اگر این سیاه دونه رو سابوندی با روغن زنبق قاتی کردی مثل سرمه به چشمت بکشین به بینید استنشاف کنی آب آمدن های علکی چشم برطرف میشه یعنی هم پیشگیری هم درمان آب مروارید چشم میکنه یا کاترکت تو خوردنی هم که قرهقات سیاه بین سه تا شیش عدد بخوره قرهقات سیاه که سیاه گیله است قوی ترین داروی ضد شبکوری ضد گلوکوم یا آب چشم و ضد کاتارت یا آب مروارید چشمه خواه این که به صورت استنشاق و سرمه بود که پودر سیاه دونه تازه در روغن زنبه اون یکی هم که خوراکی بود بین این دوتا دارو دوازده ساعت فاصله باشه اینا حواشی ما به این کتاب اگر کسی بلندی نفس دارد انتصاب و نفس بساد انتصاب نفس نفسش طولانیه اینقدر لازمش نفس بشه مومن نفس کم نمیاره اگر حالتش این بود اینجا میاییم سیاه دونه رو تو امن با نترول, با نترول دوتاییش با هم می جاییم می برای درمان انتصاب و نفس مفیده که بلندی نفس اگر مؤمن شخص کرم کدو کرم آسکاریز کرمک انگل و مانند اینها دارد در معده مخصوصا در روده ها. حالا اینجا سیاهدانه رو که بخورن یا زمادش رو برناف ناف مخصوصا روغن سیاهدانه قلیز سبب دفع این کرمک ها و کرماسکاریس و کدو و انگل ها میشه بدون اینکه دارویی بخوره حالا سرعت به دفع ببخشین یا بانوار با یک داروی مجزا خوردن تخمه خام هندوانه اندازه یه موش هر روز بخور مغزش اندازه یه قاشق پلوخوری سرپر مغزه تخمه خام هندوانه ضد انگله و انگله رو از بدن دفع میکنه یک بار دیگه از شخص نه گرمزاجی و داراین انگل و اینا هست اینجا تمر هندی رو زمیمه میکنیم روزی یه قاشق پلو خوری تمر هندی بخوره یا با آب بخوره اینا ضد انگل ضد کرماتن حتی ضد کرم آسکاریز کردو اونا رو بی و بی جون میکنه دفت میشه چون گاهی حرکت اینها از طرف معده و روده به طرف پایینه گاهی حرکت اینها به طرف بالاست من تو این عامرم یک بار تو یکی از دبیرستانه دیدم یه بنده خدا الان نمیخوام اسم ببرم تو یکی از دبیرستانه مثلا شهر تهران بود یه مطمئن رنگش سفید شد من ما خییا کردیم کم خوونه یا فشار خوونه زیر ده نه او که این یه حیون از درش افتاده بیرون صافه کرده ترسش برداشتیم چون اون کرم اسکاریی خیلی بزرگ فشت کردیم اون هم حوااسش نبودم یه تخمهدوه میخواد پدر ماده های یه رو دستش می مثلا نخواه ب چون کل می گیریم و حال اینکه ضد انگل این یه اشتباهه لپیه که بعضی داخل خارج کشور میگن میگن اگر مغزه خامه هندوانه بخوری کرم میگیری نه هم وجود این خودش زده انگل و زده کرم. یعنی کرمک و انگل و کرم موجود رو بیجون میکنه ناجون میکنه دفت میکنه لذا بچه رنگ رو میگیره تصافه فهم آب و تاب میگیره نه این که دشمن های نفوزی بخورن این هم قضاش حرام بشه این هم یک کم توضیح دادیم اندام های راننده به سل قدیم سیاه دانه را بخورن یا برناف مالن داروی کرم و کرم کدوس و اگر چند روزی آن را با آب به کار ببرن در خانوم هایی که آمنوره اولیه دارن سبب راه اندازی حیز و قاعدگی میشه اگر با اصل و آب گرم یعنی ولرم این سیاه دانه را بخورن برای سنگ کلی و مسانه نافه که قبلنا گفتیم تو بحثای طبها در علاج دردهای بلغمی و سودابی بسیار دوای خوبیه چه ازدیاد مخاطی یا ترشوهی یا خلتی چه ازدیاد ضعف عصبی و استراب و استرس بسیار دوای خوبی گفتیم یک تریاق نظیر نمک طعام پودر سنگ اون که تریاق اکبر یه پادزهر قویه حتی ضد سم ناشه از نیشه حیوانات سمیه مثل روتیل، زنبور گاوی و مانند او حالا این سیاه دونم هم همه جوره یک پادزهر طبیعه اگر یک درهم که نیم مسقاله یعنی دو گرم و مثلا نیم چون هر مسقالی چهار ممیز چلوشیش گرم حالا مثلا دو نیم گرم مثلا اگر یک درهم که نیم مثقاله مثلا دو نیم گرم از سیاهدانه را خورند پادزهر نیش روتیله پادزهر نیش روتیله همچنین حشرات از دود سیاهدانه میگریزند. می گریزند عقیده دارند که زیاد خوردنش سبب مرگ انسانشه این حرفشون درسته اگر در مقدار زیاد بخورن چون مسمومیت میاره نزیره مثلا فرض کنید خود زعفران زعفران خوبه یه محرکه یه شادی آور و تراوت طبیعی میاره اما اگر کسی زیاد بخورن انقدر میخنده تا بمیره رضا باید معتدل باشه کلو وشربو ولا تصرفو إن الله لا يحب المصرفین در کشورهای مختلف هم سیاه کاربرد داره مثلا در هندوستان عنوان محرک، بادشکن، مدر، قاعد آور زیاد کننده شیر مادر تجویز میشه سیاه دانه به منظور کاستن اثر حدت آن نگفتیم گرم و خشک بالاست حالا اینو سیاه رو رو روغن کنجد قاطی میکنیم شدت حرارتش کاسته میشه در استعمال خارجی ها برای فروکش کردن تابل های پوست مفیده گفتم روغن سیادونه بزنیم قبلنا در نیش اقرب نگفتم مؤمنان قبلنا گفتم بعدنا هم تو تبل معصومین میخونیم تو قسمت سم که مثلا یه اقرب جوار خبیسی مثلا دست یکی هم معصوم هم. مثلا نیش زد بعد حضرت این نمک برداشت پودر نمک و جای نیش این اقرب جوری ماستایج دارم بعد تریاق تریاغل اکبر یک زده سم قویه بلا فاصله سم اقرب و خونسام یعنی کسانی که تو مرتع میرن جنگل میرن بیابون کوه کمر راه پیمایی کو پیمایی سخر پیمایی چیزه آسان آدم یاد داشته باشه خوبه میتونن توی قفصی کمک های پودر نمک خادثه سنگ بزنن باشه مثل چیزای دیگه، مثل صبر زرد، مثل حنا اینه همه تو مسائل اورژانسی ها حرف اولو میزنه با اینکه که در ظاهر خیال میکنی سادست، آسونه در شبه جزیره مالایا، سیاه دانه مخلوط با داروهای دیگری به صورت زماد، برای آبسه ها، برای روماتیسم. برای ورم گوش، برای زخم بینی و سردرد مصرف میشه. همچنین از آن محلولی درست میکنن که برای کمپرس بیماران بیماران تبدار مورد استفاده قرار میگیره و یا از آن محلولی به صورت غرغره استفاده میشه تو بحث های و تو بحث های آس و تو بحث های سرماخوردگی تو با آبریزش بینی که زکام از سیاهدانه برای ترمیم ضعف بدن مخصوصا بهترین زمانش که یه سیاهدانه با اصل شب قبل خواهد و رفع مسمومیت های خون هر وقت از روز خوردیم بتونید دو استکان چای سیاهدانه تازه جوش بخورید. شب هم که گفتیم یه قاشق مربخوری سیاهدانه با اصل بخورد و رفع مسمومیت های خون و در مواردی که کبد شخص بزرگ شده تحالش بزرگ شده کلیاش ورم کرده اونم که دیروز تذکر داره سیاه دونه با اصل بسیار مفیده تو بحثای نفرولوژی در درمان نفریت انواع ورم ها داره که تو روایات شیعه امام صادق علیه السلام فرموده زدل ال اورامه مثل اینکه ضد زد زده قرار کمی قرار شکمی بروده ایه. حالا اینجا در همه کشورها و در موارد بزرگ بودن کبد، تهوع، شکم درد، همچنین تقویت زنانی که بچه زایمان کردند و بعد از زایمان حالا تو دوره خون نفاسن اینجا اولین غذاشون باطاب که خرمای تازه است. بهترین سبونهشون شیر شیرخرما شیر خورما و حلیم گندم گوشت بهترین نهارشون آب گوشته. بهترین شامشون سوپ به اضافه آبقوره فارغ زیتونه حالا بعد از شام تا وقت خواب آب سیب اصل. شب قبل خواب سیادونه با عسل و برای تقویت زنانه پس از وضع حمل تجویز می شود زود بدنش رو فرم میاد زود از خون نفاس پاک میشه شیر سینه مادرم کم نمیشه بچه تمشیر کم نمیاد این هم مؤمن ها اگر کسی این چهار بیماری رو دارد مثلا نکت سنجی های بیجا دارد جنون عارضی داره خشونت بیجا داره عصبانیت بیمورد دارد اگر کسی این چهار بیماری رو داره، گاروز چیه؟ گل راعی یا هو فاریقون صبح یک قاشق مربخوری پودر آن و یه قاشق یک چای خوری پودر گل راعی و یک قاشق مربخوری باخوی وسط و روز و عصرانه یه قاشق چایخوری پودر چای کوهی در یه استکان آبجوشه ولم آبجوش میزی صبر سب میکنی شه بعد قرغره میکنی میخوری گل بهار نارنج اینم یه قاشو چای پودرش اول مغرب میخوری با یه قاشق مربع بخوری چی؟ اصل اصلاتو آبیشن نعنا بذار این مال دارو مال خوراکی یکیش مبایست خودمون میشه سبحانه شیر تازه گاو یک لیوان به اضافه اصل آویشن شیرازی یک قاشق پلو خوری نهارها بهترین نهار برای این که این چارتر دارن دکتر سنجی های بیجا جنون عارضی، خشونت بیجا، جا عصوانیت بهترین نهارشون یکی خاویاره بیشتر میگوه این خاویار یا میگوشونو با نان سبوسدار بخوره مثل نون و هفت برگ کاسنی شامش سوپ با آبقوره و روغن زیتون اینا میتونه باز با نون سبوسدار و هفت برگ کاسنی بخوره بعد از شامش یک لیوان آب سیب طبیعی با یک قاشق پلوخوری عسل شب قبل از خواب یه قاشق مرب بخوری سیاه دونه با اثر بجوه و بخوره شقیقه ها و ملاجش رو شقیقه ها و ملاجش رو با روغن سیاه دانه ماساج بطوره این آخرش مربوط به مباعثه ما بود هر چهار بیماریش خوب میشه لازمیست داروهای متنوع شیمی درمانی بخوره لازمیست اگر کسی مؤمنه، مثلا خانومش یا شخص دیگه هم کیس داره هم فیبروم داره که میام یا پاپیلومه هم زخامت اضافی لایه داخلی رحم داره اندومتر بسه آندومتریوز میگن هم آب آوردگی مثلا نسوج داره هم نارحتی دانه رحم داره هم تومور در رحم خرابی رو خرابی حالا باید این خانمش هم به اینجا مؤمنه بدون این لاپاراسکوپی بشه و و مسائل دیگه بشه و یوسپی بی برداری بشه و در جراحی موضعی بشه یا کرتاج بشه و امانند اینا اگر این مسائل رو رعایت کنه خوب میشه چیه دارو همه اینا اگر دوش فرض کن همه هم با هم داره این هفت چیزه که رعایت کنه یک شیر عسل کوهی یعنی شیر تازه گاو کمچر با عسل کوهی این ناشتایی میخوره آب سیب عسل شب میخوره بعد از شامش دوم گل استخدوس یک قاشق چایخوری پودرش میخوره قبل اینکه بره سر کار صبح سوم وسط روز گیاه مخلصه یک قاشق چایخوری پودرش در یه استکان آب جوش اول ظهر آب زردک یا هویج زد یا هویج رسمی یا جذر قبل از زهرشم میتونه سیاه دونه با اصل کوهی بخور اصر چای رازیانه یکی دو استکان میتونه بخور یکاشت چای خوری رازیانه هم بزنه تو آب جوش پندقه ده کنه بخور اول مغرب پودر افتیمون بعد از شامش با سیاه با اصل میخوره شب قبل از خواب گل خار مریم با این چند تا گل که گل استخدوس و خارمریم و یا گیاه مخلصه انواع تومورها و از بین بردیم و جلو پیشرفت سلولهای سرطانی یا ازدیاد انواع کیس رو هم میگیریم که از حیث حجم و وزن و تعداد زیاد نشن و خوراکی های مقوی زده ازدیاد مایه بافتی مثل اثر مثل زردک خود زردک عامل ضد سرطانا به خاطر اینکه پایه ویتامین آ که بیتاکاروتنه داره و همچنین فعال کردیم هم هورمونای زنانش و هم تختانای زن رو چون وقتی که کم کار باشه زریب به کیستم بالا میره به فیبروم هم بالا میره چون هورمون مردانه تستوسترون در بدنش بالا میره ما با چای رازیانه زنانه زنانش هم چکار کردیم بالا بردیم استروژن و پروژستران این پودر افتیمون که گذاشتیم، ما اصای دست و کمک گل استخد دوست بشه این دوتا دست به دست هم میدن هم تجمع مایات اضافی بافتی هم کیستا و تومورها هم یبوست مزمن مریض هر ستا با هم خوب میشه لذا این پودر اپتیمون رو هم اول مغرب گذاشتیم خوب معنون شد مومنم این داروی مرکبه و مفرده که بخوره تمام این یک دو سه چار پنج شیش تا بیماری که همزمان داشته باشه یک مریض خوب میشه این مریضا که مراجع کردم نمشتم ها باز چیزایی دیگه هم هست مومنم مال انواع سکسکه ها که حالا اللهم صلی علی محمد سلام محمد